نظره محبی سوهیلی شهندگان عزیز صاحب گل ما در هفته پیش دست نیاز به سوی شما دراز کردیم و تمنای ما این بود که در باره برنامه بزم شاعران اظهار نظر بفرمایید تا اگر شما بخواهید این برنامه بماند و اگر آن را ملالنگیز می دانید برای همیشه با آن بدا کنید ولی شما شنوندگان صاحب زوغ و صاحب دل با نامه و تلفن آنچنان بر کار ما که جز یک خدمت ادبی در لباس تازه نبود سهه گذاشتید و به ما مهر ورزیدید که من احساس میکنم فقط با کوشش روزفزون در بهتر کردن برنامه میتوان به این همه مهر و انایت پاسخ داد ما همکنان برانیم که به دان راهی برویم که شما میخواهید و باز هم از شما خواهش میکنیم ما را در راهی که داریم ارشاد فرمایید و اتمینان میدهیم تا روز این برنامه خواهد ماند که شما بخواهید قصد ما خدمت است نه ایجاد ملال. محبت شما مایه دلگرمی ماست و خواست شما مورد احترام ما باید بکنم که از این هفته برنامه بزم شاعران یک میهمان هفته خواهد داشت و هر کس بچه امتیازی در یکی از مسائل هنری داشته باشد میتواند مهمان عرجمند شاعران باشد در این هفته میهمان ما همکار عزیز آقای عبالحسن احتشامی هستند از نویسندگان باسابقه و انماینده محترم مگز شورایی ملی هستند و بنده زمن خیر مقدم به این میهمان گرامی اجازه میخواهم خواهش کنم که میزبانان این بزن عدبی یعنی شاعران ارجمند به معرفی خودشون بپردازند سیمین به بحانی ارادتمند همه ابراهیم صحبا مشفق کاشانی بنده هم مهدی سوهیلی مضاهم همیشهیشون زمنان خواننده این هفته ما آقای گلپایگانی و نوازنده ما آقای فرهنگ شریف هستند که در موقع مختزی از نوای گرم گلپایگانی و پنجه شرین آقای شریف استفاده خواهیم کرد اگه از آقای شریف دنبال روی برنامه ما هستند و باید همراهی کنند شعر شاعران رو و من خواهش میکنم آقای شریف کارشون رو بیشتر با ما ادامه بدن و از اول شروع کنند موقعی شعر شروع میشه خب دوستان سلام میدونه که از آیه احتشامی میمان عزیز خواهش بکنیم صحبتی کنن خاطری بفرمان و ببزم و رنگی بدن بله احتشام بس مانسوری احتشام آیه احتشامی ازداد احتشام متکرم ولی من خیلی مهمونی مهمونم نیستم زیرا سالها با این دستقا همخاری داشتم حالان م با به تجدت یکی دو خاطر نقد میکنه. اگه میهمان بودوی آقا چ من گه چیزی می گفتفتم بهشه معرووب که میهمان راحت جان است و یک کمچون نفس خفه سازاد که فرو آ رو بیرون ن رودش مخت در زیاد دارید الا <تصفح> <تصفح> اگر این خاطر ها خیلی شیرینم نبود شما خودتون به حلاات خودتون تون بکشید یا ببخشید خواهش میکنه اختییاید ویان توشیه طوری که خبردار ما سال اهل قلبما روزعمل بیست هستم. بیست سال پیش کرایک از روز زمان تهران. یه قسمتی اداره می کردم. خاطراتی پیش میاد و پیش می که بعضی از جالب به نظر می رسیم اگه اجازه می فرمایید دیگه ایش نقل بکنیم خاطره دارید فقط؟ سوال بیشتر به شهالا ببینیم که از آدر می خاطره بنده اینه که همون زمان مخبر شهری روزنامه اصلی با شور و حرارت پا حیجان اومد به دفتر که خبر بسیار جالب یادن روزنامه آورد البته میدونید خبرای روزنامه وزایر جالبیت فراهم میکنه. هر مثل امروز حوادث شهری و این جور خبرهای ترسودار، خواننده و مشتری. ایشون اومد گفت امروز بعد از ظهر در لیموناد توی خیابان باف همايون حادثه پیش آمد و مدی... اون رئیس اون در اثر رسید و آکسیام هم سازی. عکسیم آورد، بعضی چند مشخص با هرولت هرچه تمام کرد و تفتیش. هم نوشت و شعر و تفصیلات به که میدونید آماده کرد و فردا در روزنامه عصر منتشر شد چشمیتون روز رو بعد نبینه و در روز بعدش بود که دیدیم یک شخصی رنگ پریده هر آسان اومد تو که آسره من کشتید کیشه وانه کشته ده. این خبری که شما دارید در سن در اون صاحبه منتازی منم مدیه روزنامه خیلی دقیق و خیلی هم موشکاف بود خیلی نارد شد. فرستان اقام مخبر مخبرم نبود به هر زحمتی بود مخبر آوردند و مخبرم همینجور خیلی با گردن است سرفراز و با اینکه که فتی خیلی بلی کردی و حاله که تو همینست گفت خبری که مدیر روزنامه خیلی خونسرد گفت این خبری که مرهومی آماده چه باید کردید این خبر از چی گرفتید گفت خلون رفتم از محل تحقیق کردم از اون فلا هم شاهد دارم شاهده شاهده من... بله شاهده همه شاهده همه شاهده همه شاهده قوم عاشق اندنشن است بود که, که خوبم من چند روزه که بستگانم رفتن به مشهد و الان روزایی که اونجا برسه اینا همه سراسیمه و سرگردون میشن خط میذارن مصیبت وار، من چی بگم من زنده هر او خواست که بگوید من زنده ام و با او میکنه آقا این مرده خوش خبره این مرده خوش خبره الان خیلی خنده‌دار بود جالبی بود این موضوعی بود رسید که موقعی کسی پسرش مرده بود نامه ی نشود به در سجل که فرزند این جانب رو عمر خود را به این اداره محترم بردیده میگه اون به شما داد خواسته به احترام بذنه به اداره گفت اون رو چه به اداره بده بله این یه خاطره ای بود از زمان روزنامه نویسی چون اینجا محفل شعراست و استاد سهراب سرکار خانم بهدانی و عبدلغه استهلی و که قضیه میلادانگیز بوده من بله پای مرنی میسنادو گفتم برای شعرا داشت می‌داد می‌گفت بوش گیرین یاد بفرمایید بله برای امروز ما بیشتر اون حوادث جالبه حالا ان شاء الله این ان شاء الله سعی که تقدیم کنم برای شعرا مطلوب باشه بله فراموش کردم که آقای فقط می تشدیف دارم در همه شعرهای بنام یک فاطره ای از محفل شعرها بوید بسیار بسیار مفکر اون وقتا که ما بازشون رو سوری داشتم و به شعر و شعرها خیلی ازاری هست موید آقایی تشویم مثل گل نداری زمان از سرفا چه می روید یک گل گفته ست گلیسون نشکفت خیلی علاقه داشتم اون واقعی که به این انجامان شعرها برم یکی از این جمن های ادی که من میرفتم استادانی شرکت داشتم که بیشتر از همه که اونجا من تماس داشتم و آشنایی داشتم آیا فرات معروف بود شاهر کو سالال سال ما در اون جلسه که می هر میفتیم هر شبشبگی تشکیل میشد یک نفر شاعر میآمد اونجا از قم با عجله و با حرارت. دقیقاً اشهر میخون و فبلش حرکت میکنه. اتوکار میره. اتوکار باو اشهر مثلا. شما از اون اتومبیل های دیگ میرین درختی. اونم دو سره که راه نمیه چه میخونه از اون اتوبوس سینیا بوچ چه چشمی داشت موتور قدیمی. آخه نبو صرف میکنه اینجوری. دادم یه چه بخونه خود زادم خرج کنه. تا چه شهری باشه قربون. هفته این کار ادامه پیدا کرد. بل و البته در وقتی هم شعرش میخوند اغلب اون شعرا و بزرگان قوم خیلی خوشنیمتون فوز بود اشعارش لطیف تا بود مضامین لطیف میکشاداش من خصوصا فرات خیلی خیلی از این موضوع عصبانی ناراحت ولی هر دو شعرش میگیره فا اینو فکی به سیگارش میزد و کم میداد تا اینکه یک دفعه این شاعر بزرون اومد و از فرات پرسید گفت من آخه من هر هفته میام اینجای کرای من چطوره چرا استفاده سازی نمیکنید راهنمایی بفرمایید فرصات هم که منتظر چه فرصتی بود گفت عزیز من شما هفته که از قم میای بهتره برای ما به جای اینکه سوهان روح بیای یه جاده سوهان قم بیای هر دو تا بیشتر خیلی خوب بود هر دو بله بسیار جلسه خوب بود و مثل اینکه ادب ارتزا میکنه که از خانم سیمین بهبانی شروع کنیم البته،, البته شما خانم یه خاطره بفرماییم طبق معمول و بعد یه جدی اگر اجازه بفرمایید من خاطره رو به صورت یه مناظریه که با آقای صحبا داریم بزارم برای آخر برنامه و اما بسیار خوبه بسیار خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه خرفی ناتی پس رو بفرمایید آقای شریف همون پنجه گرمشون رو به کار بندازند و حالی بکن بسیار خوبه بسیار خوبه اما شعر جدی من هم خودش تقریبا حالت یک خاطره ای داره یعنی به این صورت هست که از کنار یک استخشی میگذاشتم و این نیلو فرای آبی سفید برای که بهمت. دو آب هستن تو شعر شاعر اصلا من بعض از یک خاطره است البته برای من یک حالت ناپایداری احساسات بشری رو زنده میگهد یعنی تکیه کردن این عباده. عباده. روی آب یک حالت بیقراری داشت به من این شعر رو تحت تاثیر اون حالت ساختم الهام را از یک نیلوفری خانم همش پر احساس و شیری نیم راست دارید آقای صفحا همه مثل شما تحریف می همه عقیدتون اینه ایشون کافی هستم برای شهر خانم یک داقه دلبست از برای خیلی خانم نیلوفری که زوره به براب برای داشت نیلو فری که زورق سیمین براف داشت جا در هزار دایره سیم ناب داشت ده، ده، ده، ده، ده بر سبزه ها ستاره شبنم دمیده بود در چشمه ها بلور روان پیچ پیچه تاق داشت ده، ده، ده، ده، ده من بودم و تو بودی و آن سایبان سبس دلهای هر دو حکم روان از شباب داشت دست نوازش تو روان بود چون نسیم ارسینی که روشنی و لطف آب داشت این بوسه های گرم که بر چهره می نشست که ای آب دار بود که شهد و شراب دار قربال سبس فام درختان به دست باد برمان نثور پول زر از آفتاب در قال سب ساام درختتن به دست باد برمان ساور پول زر از آفتاب داشت؟ رفت لحه ها به شتاب و گریز نور؟ در خاطرم گذشت زمان چه حساب داشت؟ استی که در شکوه به خورشید زد دیدی که در گرید نشان از شهاب داشت گویی خیال بود و سؤالی که داشتی بیداری گذشته ما رنگ خواب داشت می می گفت شرح سستی بانیان عشق ما پیلو فری که ز اورق سیمین برات باش. بسیار خوب. خیر. دست اول حالا ریاست سنی با آقای سحواس، ولی آقای طرف. البته، البته. نه آقای میفرمایید سرکار هم یخاطری بفرمایید، شعری بفرمایید. واللهنه گرمتون. حرف کنم بنده خیلی خوشبختم که این مجلس شاعران تشکیل شد و مخصوصا دوست عزیز شاعران آقای مهدی سهیلی این برنامه گرم داره میکنن که ماها هم به خواهش می‌گمونن من اینجا جان آوردن. که جناب آقای اهتشیامی را هم که را هم از دوستان هممون هم هستن و هم نویسنده بسیار معروفی هستن در این بعض دعوت کردن بسیار منگس گرمی تو خصوص که با در خدمت آقای مشفق کاشانی هم هستیم ما تشاره لطیفت هم سیمین خانم و ساز آقای فرهنگشتریف و آواز آقای گلپایدانی هم که الله بعد خواهیم شنید بله. در هر صورت بند برای اینکه این بعض من خیلی دوست دارم وقتی که آقای سهیری از من دعوت کردن با کمال اشتیاق قضی رفتم و باید گفت در کوی سخندانون گر انجمنی باشد جمع است دران هر جا شیرین سخنی باشد این شعر قزل خواند اون قول و مثل گوید الحق چنین مجلس خوش انجمنی باشد شیرین سخنان شهر آیند و گرده هم حیف است اگر خالی از سیمتنی باشد بحب. بحب. اما راجب جا. این که فرمایدی تو ریاست سینی طریق شما هم درست نبوده چون سیمین هم هست بله در صورت <تصفح> هم سیمین تن هست هم سیمین ببانی هست <تصفح> <تصفح> نور الانون حد سبنده درست بوده <تصفح> اما این که فرمایدی ریاست سینی کلمه ریاست بطه خوش آینده اما سنیش مقداری مثل این که مورد خب ای به سیما آمان خب ریاست هم بشتنی که نمیشه برد بنده رجب این موضوع هم قبل از این کون شعر جدی که برای این برنامه آماده کردم بخونم دو سه که جواب فرمایش آقای سوهیلیست با اجازه می خونم. اگر که عمر دراز و اگر که کوتا هست خوشون که سال و او وفق دلخواه هست دو عمر باشد در زندگی خلایق را که فرد این دو شناسب کسی که آگاه هست یکی است عمر تن و دیگری است عمر روان کسی این دو به یک چشم دید گمراه هست چه عمر روح من افزونز 20 نیست چقم اگر که عمر تن من قرین پنجاه است اگر تو خب آقای کمی هم فرمودید و حالا چون موقع دریا و موج و بس کنم که این این پلاج است بنده پری که برای دریا و برای موج ساختم شاید کمی هم آموزنده باشه شما خاطرتون را نفرمودید که دلیل خاطره باید بگم آره اول خاطره بود خیلی خوب حق می‌کنه عرض کنم <تصفيق> چند سال قبل بنده سفری به بابل سر کرده بودم وقتی وارد خانه شدم موقع نهار بود خیلی شلوغ بود جا نبود بعد یک ریز شش نفری خانم و آقا نشسته بودن مرد محترمی بلند شد و خیلی نسته بنده احترام کرد و به اصرار بندر سرمیز خودش برد البته بنده خیلی خوشحال شدم برای ایک جا نبود اون آقام خیلی نسته من محبت کرد وقتی هم رفتیم بلا ما خیلی سنگین برداشت کرد و نمیدونم اون حرفایی که نسته همه معموله و همه شو ارامیگن استاد و اینها و خلاصه مار بالا نشوندو بلافاصله غذاي چربنربي که سر میز بود بازم دستور داد و انواع اقسام ماكولات و مشروبات برام آوردن. خير م... معرفي دون كرد. الله بفرمایید. حالا عرض می‌کنم. بعد خیلی در درصت به بنده خوش گذشت که در اون بیجا و مکانی يك كمجين میز مجللی نصیب ما شد. اونها مجانی. با احترامات وافر. اما بشه که تمام تو عادبی ندارش. اجازه بفرمایید ببینید. بعد وقتی كه بنده به رسید بودم اون آقا بلند شد و گفت که واقعا این استاد ابوالحسن ورزی بسیار, بسیار شاعر بلند بلندپایی خیلی این تعریف زیادی از ورزی و گفت بله ایشون مرد بسیار خوبی است شاعر خوبی زبان میدونه خیلی ایشون تعریف کرد مکالمات زیاد گفت گفتم منم تصدیق می‌کردم همه اون حرفا رو تصدیق می‌کردم بعد که اونم بنده رسید بنده گفتم که آقای ورزی نه تنها این فضایل دارن بلکه موسیقی هم خوب میدونن بلکه قاضی خوبی هستن و از این قبیل هم تعجب کردن که بنده به جای شکست نفتیشو تأیید میکنم <تصفيق> اما بنده گفتم متاسفانه اون مرد خوشبخت بنده نیستم اون جناب آقای ابوالحسن ورزی هستن که تهران نشو دارن بنده اسم ابراهیم صحبا <تصفيق> و با ایشون دوستام مناظره داریم با هم أشرون به هم ولی اون شاعر منظور من نیستم البته مکدست خیلی گرم شد و خندیدن و میزبان گفتن آقا فرق میکنه شاعر شاعر جنابالی هم مثل ایشون <تصفيق> یه ورزی دیگه که باقی گفتم در رو اگر منظورتون شاعره بندم شاعرم ولی اگر منظورتون آقای عبرستان ورزی است عوضی گرفتی دستور مفتی دادید <تصفيق> بنده گفتم که خب حالا اول نشناختید که بنده ورزی هستم وقتی که سفره بسیده سوشت رو نشناختید <تصفح> گفتم مگه ایشون به یک پرس دو پرس خانه هستم این <تصفح> اگر اول نشناختید بعد رو نشناختید البته هفتن <تصفح> دیدن و گفتن پس خوبه به خیر گذشته بایده همامون گرسنه مونده بودیم گفتم ممکنه بعضی هم در خطر بودید هستند در خطر خیلی روز خوشی گذشت و من گفتم در مقابل خیلدتی که بنده کشیدم که سور عوضی خوردم خواهش میکنم که پیش خودمون بمونه اگر به گوش استاد برسه که بنده به جاییشون سور خوردم ممکنه با بنده سالها قهر بکنه و کینه شکم هم معروفه نفاق ما بیرفته و اصلا ممکنه هم خطر داشته باشه که بفهمن که بنده جاییشون سور خوردم در قول دادن اما وقتی که به تهران رسیدم روز دوم میام آقای ورزی برف روختم پیش من که آقا من امضا نداشتم که تو به جای من خودت غالب بکنی و سوره بخوری و سوره قصبی گفتم آقا سوره قصبی نبود ما رو دادم ورزی هم این این چه طرف بوده به جنا باری مربوط نیست در هر صورت گفت فایده نداره با سوره منو پس بدی ناچار شدم یک سوره ورزیانه که باعث 4 پرس باشه بیشتر تا 20 کردم بعد هم برای اینکه اشخاص دفعه به اشتباهی افتادن که ما مختصر گوشتی داریم و با ایشون اشتباه میشیم و شعری میگیم و ناظرهی داریم عوضی نگیرن من این نشانی از ایشون دادم که رفاقی دیگه بخوان مهمون کنن ایشونو بشنستن که دیگه بعد تشریمون نشن گفتم که ای که از ورزیز من پرسی گه و بیگه نشان این نشانی بشنم از اون شوخ تبعه نکتدون وزن او باشد یک خروار قدری بیشتر اشتهای او فرا تفعه او روان بیا شریم از خودتون هست که من شنیدم هفت مرگ پختر ورزی به خود ما هنوز هم در فیه یک جوجه ایم <تصفح> <تصفح> <تصفح> من حالا امیدوارم که شاهره گرامی آقای عبول ورزی این مضمونی که براشون کوک کردی شنیده باشند و در بزم دیگری که شاید به زودی تشریف میارند کیاوش مورا بدن آقای سرور ان الان میگن شما تنها به قازیر رفتید ما که طرز تقدیر شما رو ندیدیم ایشون باید بگه چانی هم ندارم ایشان بفرمایید خودمم تام بفرمایید خب حالا نوبتشه جدیدتون آقای سرور ببعد این شعر راجب تون فست دریاست ببعد به نام دور نمای موج بله نا اوگهز دور موج گرانی شود پدی جوشان و پرشتاب و خروشان و سهناک چون در کران وحر به دریا کنی نگاه گویی که هست گران قاصد حلاک چون دی بر خروشد و کخت بر لب آورد دیوانه ای بود که تلاشش هدر شود اما هرانچه آید و نزدیک تر رسد بشمش فروغ نشیند و آرام تر شود کم کم دهان بخنده کند باز و بشکفد شوخی کنون دود به یمین و یسار تو اون موجهول ناک که دیدی زراح دور آهست بگذرد چونسیم از کنار تو ببه ببه بسیار ناگهده دور موج گرانی زرنج و غم در عرصه حیات به سویه تو رو کند سنگین چو کوه و خانه برانداز همچو سیل و در میان خرق تو را جستجو کند بو این هنگ مرگ دهن باز کرده است آقید زراح دور به قصد حلاک تو دل در برات تپد که چنین موج سح گیم که می کند به دل درد نا که تو کم کم شود ملایم و تندی فرو نهد پی خروش و خشم شود قاصد سرور آهسته بگذرد چون نسیم از کنار تو اون موج هولناک که دیدی دی راه دور <تصفح> <تصفح> براه براه براه بسیارم بسیارم بسیارم, بسیارم. بسیارم. بسیارم. بسیارم. بسیارم. انداج حادثات به دریای زندگی از دور هست کوه و زن از دیک چون نسیم بس مرد ساد دل که چون موجی عظیم دید جون باخت در کرانه دریا زهول و بیم دل را نگاه دار و مشو سبب ملول روزی اگر که خشم کند بر تو روزگار گر مشکلی زمان تو را پیش آورد سر پنجه زمان بگشاید گره زکار بسیار بسیار, بسیار, بسیار, بسیار, بسیار آموزندهی هم بود برای علیه. کسان که گاهین آمید هستند و خیلی شعر امیدوار کنند خیلی بشکرم خب آگل پایگانی نیمی از شعراشوی شعر خوندن خاطره گفتن و خیال میکنم که شنمندگان الان میل داشته باشن که آواز شما رو بشنبن و حیف شما اونطور ساکت در گوشه بز به ما نشسته باشی دو ما استفاده نکنیم خواهش میکنم اگر اجاز بفهم چون این مجلس حالیه خواهش میکنم من یه قذلی از خود شما خیلی با حالی این قذلی بخونم و این خوندن من غیر از خوندن های همیشه است ها نه اردمان صورت میگیره اینه که دو طرف حالیت باید یه چیزی باهانی خیلی متشکرم آقای شریف فرشتن بنام یک کشماء نگار نگا من مو سپیدم را نگاهی خو سپیدندام من سپیدندام من تو ز سیاهم mimi bi ni ni ni ni afa afa afa ونو هم چی يي رو ياد من چه مي مگر مگر نو ہمرا نمی بینی جا آ نمی بسیار عالیه خیلی خیلی مال شما شما که اینمای گلپایگانی که به شعر من رونق دادید با آواز عالی و گرمتون <تصفح> بله خب حالا دیگه نوبت آقای مشفق کاشانی است خواوازید مشفق آوازه آقای گلپایگانی رو شنیدید ساز گرم آقای شریف شنیدید لذت بردید هم از آواز گرم آقای, آقای گلپایگانی هم از ساز گرم آقای شریف با حالا دیگه یکی سلام حالا استی خاطری بفرمایید با شعری طابد. با اجازه تو من خاطره که ندارم ولی خاطره بسیار کشکی هست فکر میکنم معنام باید بزرگ گوشه برد شاید که بخاشه بزرگ داریز میکنم که چند سال قبل از این بنابرای توصیه چند نفر از دوستان چون خانم ببنده مبتلاب پادرت هست صحیح خدا اینشالله شفاشون برد <تصحیح> متشکرم عده از دوستان توصیه کردن که ما بابگر با و معلات بریم با بار سفر رو بستیم و رفتیم. پنج شش روزی خانوم این رفت تو آب اومد بیرون و خلاص پاش خوب نشد بعد به ما اسراچی تو هم بر از این آب استفاده بیرون. گفتم پات تو درد می‌کنه وقتی <تصفح> <تصفح> تو درمای جای من نیست گفت نه خوب بود بنده ولی هیچ ثوریم نبود خب بنده چند دفعه رفتم از صاب استفاده کردم وقتی اومدم بیرونم پای بنده درد گرفت پای سایه درد گرفت پای دردی خوب نشود من به <تص> می آبجر گفتم مخاطب در این روای آبجر و معلات می خونیم داریم می‌گه راه سوی گفتم که راه تو ای آب زن و مرد گرفت جرمی تو ولی دمت مرا سرد گرفت بابا آفرین می‌خواستمی که پای او جردت خوب او خوب نگشتو پای من در آفرین اجازه حالا و مستدل و گرم و شیرین بله خب حالا شعر جدیدتون بفرمایید که شعری که بنده میخونم عنوانش دیگر نمیخواهم هسته با اجازه تونت دیگر نمیخوام حال چی رو نمیخواهید نمیدونم باید چی رو تونیم آدر دلا بود البته, البته. <تصفح> آبه گرمم روز. دیگر نمیخواهم که در این پرده رنگ نقشافرین سرگذشت خیش باشم ده. دیگر نمیخواهم که در گلگشت گیتی افثانه مرغان مرگندیش باشم دیگر نمی خواهم که با افسون این چنگ در نقمت جادوی بیاموزم سخن را در تارپود ساز هستی خانه سازم رنگین کنم از شور مستی انجمن را دیگر نمی خواهم که از عشقی توانسوس طب غزل پرداز شورنگیز گردد در محفل اندیشه خودکامه چند جام حوست از شعر من لبریز کردد دیگر نمی خواهم غزال شعر نقزم سر در کمنده هر کس و ناکس گذارد دست تمنا آسمانی گوهرم را نشناخته در دامن هر خست گذارد دیگر نمیخواهم در این گرداب اندوه موج گوهر بر دامن دریا فشانم با شله های آه سرکش از دل خاک تیر بلا بردیده اختر نشانم دیگر نمی که در آینه جام نخش خیال انگیز او تصویر بندم در په دشت عمر این فریاد شبخیز راه نفس بر ناله شبگیر بندد بهتر که با بیگانه گیز این آشنایان بگریزم و زین پس ره دیگر بگیرم داغ جنون در لاله‌ی خورشید ریزم از خون رنگین شفق ساغر بگیرم بهتر که در گوغای این تاریکی ژرف لب بندم از گفتار و بیپروا نشینم چون حلقه آه سهر از سینه شب برخواسته در آلم بالا نشینم سر در گریبون مندهی سرگشت حالم دیگر از این سر در گریبانی چه حاصل گیرم پشیمانم هشیمانم هشیمان دیگر مرا از این پشیمانی چه حاصل من قصه اندوخبار قرن خیشم من داستان مهنتالود زمانم من ساز شورنجیز دور روزگارم من ناله دستانسراوی بینشانم تاواره هم از این ماجرای زندگانی آسوده از تشویش نوشنیش باشم دیگر نمیخواهم که در این پرده رنگ نقشافرین سرگزشت فیش باشه آفرین، آفرین، آفرین، آفرین شاد شورنگیر خاموز باشید, باشید. باشید. انشاءالله که حالتون حالا خلاف این باشه و سردماغ و شاد و شنگول باشید اینشاءالله، بابا گرم نمیرن اینشاءالله حالا نقاط بنده رسیده ولی حق این که قبل از بنده شما مناظری که داشتید خانم بهبانی بفرمایید و تا بنده مطلب کتایی از بکنم مطلبه فرمایدید که مناظری با آقای صحبا داشتید بله مناظری که سال پیش داشتیم با آقای صحبا البته من یک قزلی داشتم که این قزل خیلی سر زبونه افتاد اسمه چی بود؟ دیوانگی و این قزل رو که ساختم یه جوابی آقای صحبا برای این قزل ساختن و من که تازه خدمتشون رسیده بودم البته قبلا خیلی با اشعارشون الهادت داشتم هم شنیده بودم ولی تازه خدمتشون رسیدم برای من خیلی تازگی داشت این طور جواب دادن <تصفيق> و من هم یه جوابی دادم حالا قذل این طور هست من خواهش می‌کنم جواب خود آقای صاحب رو و بعد جواب خودم هم خودم بدم بهتر شدین بفرمایید دیوانگی بفرمایید دیوانگی رو همیشه می‌کنیم حالا امروز به خصوص یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم هجرشده هم زجرشده هم خارش کنم زارش کنم در پیش چشمش ساغری گیرم ز دست دلبری از رشک آزارشده هم و از قصه بیمارش کنم شایه مردم آزار هم بند بندی به پایش افکنم گویم خداوندش منم چون بنده در سودای زر کالای بازارش کنم فرنده غزال معروفی هم بگم البته همه غزال نمیخونم چه بکنم؟ خیلی ده. عذیتش بکنم عذیتش باشه بعد زه اجنا رایتی خدا عوض. چون بعد برم من خلاصه گیسوی خود افشان کنم داعتون متجاب دهاتون شده, شده؟ لخری؟ داعتون متجاب دهاتون شده؟ ناقی بر مایده با عذیتش مرتب مشغولم گیسوی <تصفيق> <تصفيق> خود افشان کنم جادوی خود جریان کنم با گونه گ باردگر یارش کنم چون یار شد باردگر کوشم به با آزاردگر تا این دل دیوانه را رازیز آزارش کنم سیار... سیار شیار لسیز خس بفنیم باردگر که قافی آرام بود باردگر خامش کنم پولش بزنید در من و فریبش بزنید در... بله بلد. بلد. بلد. بلد. بلد. بلد. بلد. بلد وقتی این غزل شیبای خانم سیمیر بهبانی رو که سالها بشنید رو داشتم دیدم اه... ده تونستم جواب ندم خب چیز ها جغدی جان باشه البته با این شرایطی که ایشون گفتن نه تنها من بنده می میکنم که اهدی حاضر باشه واقعا زیر بار این همه تحمیلات بره چرا تو سر جنس میزنی؟ <تصفيق> <نابده باقا. تصفيق> اما اگه ها که خربوزه میخونه با لرزه جام میشینه دیگه البته. البته. بنده این تو ساختم شوم, یارت شدم یارت شدم هرچند آزارم کنی نازد کشم نازد کشم ای گل اگر خارم کنی گرانیم از کوی خود بر باز خانی سوی خود با قهر و مهرت خوش دلم هر اشوه در کارم کنی بر من پسندی گر بر جون خرم اندوه و غم باشد شفا و بخش دلم که از عشق بیمارم کنی شوری دی آزادیم مهنتکشی دلداده‌ام آمادم آماده‌ام تا با بلا یارم کنی شمع شب تا رم شوی خود هم گرفتا رم شوی یارم شوی یارم شوی بی اون که آزارم کنی بسیار حالا اشمان چی برمودی؟ اما من جوابی دادم تحت اموان خواب پمبدانه صحیح حالی قایش یاد اون زربر مسئلش تا در خواب بیند پمبدانه نیفتی خب شیره میشنمیم ببینیم قضا گفتی شفا بخشم تو را و از عشق بیمارت کنم یعنی به خود دشمن شوم با خیشتن یارت کنم گفتی که دلدارت شوم شمع شب تارت شدم خوابی مبارک دیده ترسم که بیدارت کنم باقی خواب میبینم همه خوب همین آقای سهباشرشون عالی بودم شما و مناظره لکیفی بود خوب من ده یه خاطری عرض میکنم من ما کارمون به عکسی خاطرمون یه خود طولانی تره شیرمون کتا چار بیده عرض میشه بنده در حدود ده دوازده سال پیش به اسفحان رفتم و ناشر محترمی به من گفتش که در زمینه تیبت و مزاه و کمدی کتابی برای من بنویز و آمد و هزار تام پول به من داد که این هم که حق و تعلیف قبلن من میدم من گفتم این کتاب تا یک سال دیگه دست شما میرسه و چاپ میشه و آمدیم تهران رو تعلل و روح رو رو شاعرانه دو سال، ۳ سال،, سال، چهار سال، پنج سال، هفت سال خورده ده سال طول این طور شد و در نسلی بنده نوشتم در زمان عقد قرارداد فرزند ناشر طفل شیرخوار بود و در زمان انتشار کتاب جوانی برومند و سبیلدار قیمی آمان گفت کتاب بود من گفتم که چه هش فردا ارادتمندم اطاعت میکنم بعد رو بدقولی خودم حمله به خودم کردم میشری ساختم و اینو عرض میکنم برمان خاطره بفرمید من کیم بدقولمردی همچودی گر شاعرانم از سخن جادوگرم عبرت فضای ساحرانم با زبان افسون کنم هر آدمی را با وعیدی قول من مشنو که خود سردسته افسونگرانم بسیار سست عهدی کفر اگر باشد به دینداران بگویید من بدین خوی پلیدم پیشوای کافرانم نیستم بد قول تنها با رفیقان سبیلو با همه زیبا و پرستی این چنین با دلبرانم نیک در سپاهان گفت با من روزگاری اسمم آقا این نویدی بود <محن> نیک در سپاهان گفت با من روزگاری من نویدی هستم و در این بلد از ناشرانم خلاصه با این شه زیادن خوردی یعنی من را <laughs> <محن> <جرم محن> با یک اثر از رضازفر میفرمودید یک اثر از خیشتن خرسان ارمغانت می کنم یک بدرستیم و زرونم وعده دادم تا بنویسم بهر او شیرین کتابی تا بگوین دافرین از باختر تا خاورانم لیش با این وعده هم انداختم او را به پیسی زن که چندی خشک شد جوشند تبع بیکرانم تنبلی کردم قلم بر صفحه کاغذ نبردم آقابت دانه اسم من سرحلقه تنپرورانم هر زمان گفتی کتابم کو به پاسخ می سرودم خادمی از خادمانم نوکری از نوکرانم ککش یاداوری از بس که میزد بر سر من این زمان سندانم و دردکه آهنگرانم گفتمش روزی که ای جانم فدای خلق و خویت کم به لبخندت فرو کن بر رگ جان نشترانم ای نویدی تا از گفته من ناامیدی بد ندیدی تا بدانی نیتر از دیگرانم من به بدع احدی اگر همپایه شمر و یزیدم در سخن پرداختن هم رتبه پیغمبرانم ای نویدی بهر شاعر ناز کم کن اشوه کم کن گر تو شاه ناشرانی من خدای شاعرانم ولی حالا چند بیت جدی میخونم عنوان این شعر نگاه کن موی سپید و بخت سیاه هم نگاه کن سوز مرا به شعله آ هم نگاه کن گفتی مرا که شام تو چون بگذرد به هیچ شام مرا ز روز سیاه هم نگاه شاید. کن شاید. بر درد من ز حالم اگر پینه میبری بر گریه های گاه به گاه هم نگاه بحش. کن بحش. بحش. بحش. بحش. بحش. تا صد سخن به نیم نگه بازگویمت تا صد سخن به نیم نگه بازگویمت نازافرین من به نگاه به می. به به. بسیار متشکریم. شنوندگان عزیز و صاحب و گرانمایه، برنامه‌ی 밤 مشایران به همین جا پایان می‌پذیرد و بنده به اتفاق خانم سیمینه بهبانی، و آقایان ابوالحسن اهتشامی، ابراهیم صحبا، مشفق کاشانی، اکبر گلپایگانی و فرهنگ شریف از همه شما خداحافظی می‌کنیم و در انتظار اظهار نظرهای مجدد شما هستیم. روز به